سلام، حالت چطور است چند ماه است که از تو بیخبرم؟ راست میگویی من شرمندهام از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود چطور؟ خبری شده است بله، من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم جدی؟ کجا؟ به دانشگاه میروی؟ نه، در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود است. چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمی آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنن. چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم از این خبر خیلی خوشحالم چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند من هم این روزها خوب درس می خوانم تا بتوانم به ایران بیایم دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟ بله هر سال چند بار دوره های یک ماهی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رای در آن شرکت می کنن. پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی.